اولین قدم برای تدارک جشن عروسی پایان دادن به ازا در سر سال میرزا محسن خان بود، من از دو سلطنه و شمسلطنه باید از سیاه در می همام در بازارچه آچه خادی جمع به سبزیکار تخت زمرد قرار داشت و بر دیوارش شعری منقوش بود که خاننده را اگر خواندن میسورش میشد به ورود به حمام تشویق می کرد. ترف هممی که بس دلکش بود آب و هواش گوید هر کس در هوایش نفی قلبی فداک خوزهایش هم, چو کوثر. هم چون کوسر آب هم سلسبیل منبهش چون زمزم مانی چون زمزم در مقاک سنگهایش مرمرین چون سینه وشان کشتزار آینه چین گویدش روحی فداک اوت بر گردد کسی یک بار اگر در آب وی سه یابد که هرگز می نگردد دردناک به خلاف شعر بیست پلهی که از کف گذر تا در حمام می خورد چندان دعوت کننده نبود خصوصا که سنگ چند پلهی آخر رفتگی داشت و از کناره هایش جلبک های سبزی بیرون زده بود که پله ها را لیز و خیس جلوه میداد و رونده را در گام برداشتن محتاط می کرد بر تاغی مدخل پرده یاوی شده بود که از تحمل حرارت و برودت سالیان متوالی خود چون زمان بی و سال بود. نقش رستم با کاشیهای آبی و زنگاری و زرد و لاجوردی بالای پله ها نسب بود و رستمی را عرضه می کرد با چشمانی قذبناک و ابروانی پیوسته و سبلتی تابیده، بر سرش کراه خود دیو سپید، به یک دست پری گرد و به دست دیگر گرزی خاردار من از پله ها را با اکراه تمام پایین آمد و با اینکه زیر یک بازو را ملوک گرفته بود و زیر بازوی دیگر را زهرا سلطان هر دم از لغزیدن و افتادن حراس داشت و لند لندش مداوم بود شانشین همام در دست چپ سر بین واقع بود نوری که آن میتابید به استهمام کردگان گرما خورده تصور خونکا میداد و به از راخ رسیدگان سرما زده تبخم گرما. گلین خانم زنوستا با تمعنینه بر شاهنشین جلوس کرده بود. موهای قرمزش که جعد رطوبت هوا را داشت، خالوار به دور سرش شطر زده بود. گلین خانم مجه میزد و قلیان میکشید و با چشم حساب سکه هایی را که مراجعین در کاسه برنجی دخت میریختند نگه میداشت و به تناسب تعداد سکه‌های التفاتی بر صحت آب گرم و بدن بیبلایی که بدر راه همه تا تعارفات دیگر می‌افزود آن گوشه دنج برای خود تخت و تاجی بود و صلابت و اقتدار زن استاد در قلمرو و حمام حسرتانگیز بود گلین خانم بیان که صدا را بالا ببرد یا حتی نی غلیان را کامل از لب بردارد به دلاکان و کارگرها فرمان می‌داد زندبور و مشتری منتظره، روبا به این قدیفه خشک و برسون به آخری، این کاسه آب کردن چی شد راقه این بچه رو یکی به مادرش برسونه. حوز هشت گوش آب سرد سر بینه لبریز بود، یکی دو نفری که آماده رفتن بودند، سرگرم آب کشیدن پا در حوز بودند، و چند نفری که تازه رسیده بودند، در قرفه های تاغ زربی اطراف حوز جامع از می گرفتن. زنوستا به دیدن من از سلطنه از جا خیز شد و تعارفات را شروع کرد خیلی خوش اومدین صفا آوردین گلخن و گلستون کردین تشک دارین به شانشین پسیدن برای قروق دستوری ندادین گفتم فرمودین امروز قروق لازم نیست اگه کم و کس جذب بزرگی خودتون ببخشین و بفرمایین من از سلطنه نفس زنان گفت خانا بادان زنوستا کم و کس ما فقط به آب خانه ایم که الحمدلله فت و فرافنه زنوستا گفت آب که مهر حضرت فاطمه سبیله الباقی انعام بره خدمه بسته به کرامت و بزاعت هرکس به اگر می گلین اسکلین خانم را برای هممام خودش در کنج بازار مسکرها قرب بزند دیگر غم اداره آنجا را نداشت ولی به کدام زبان چرب و نرم او که از این عرضه ها دار دوباره به زن گفت خانه آبادان زن استا. نه همون قمر خوبه ممنون من از سلطنه هرگز آن راه دراز را نمیکوبید که به همام کنج بازار مسکرها برود به هممم بازارچه آشق خادی هم به ندرت می آمد معمولا هممم سر خانه را آتش می‌کردند که دردسر سر شدن از پلکان و خشوبش با زن اوستا و دو هوا شدن و انعام دادن نداشت ولی هر وقت به این حمام میآد ناگزیر با همه تشریفات لازم میآد. میرزا محسن خان تن زنده بود اینجا را به حمام خانه ترجیح میداد و خدمه را با بزل و بخشش های بیجهت بدادت دادت میگرد یعنی خانم میدانست که من سلطنه هرگز در شاهنشین رخت عوض نمی کند چون این کار در قفه به بکنک زهرا سلطان و ملوک برایش راحت تر است و حاضا برای ادای احترام تعارف را همیشه میگردد. ملوک سوزنی های مخمل و ترمه را برای شمسلطنه و منزه سلطنه قبلن بر سکوی سیمانی غرفه پهن کرده بود و زیر جامع ها و پیراهن ها و قدیفه ها را شده بر آنها چیده بود دولچه و لگن و تاس و سینی منزه در کنار دیوار کاشی قرفه رختکن بود و کیسه و پریچه و پاخار، سابون و سد و کتیرا، ستی و رنگ و هنا، شانه دو سر و کفش چوبیش، همه دانه دانه و بسته بسته در داخل لگن قرار داشت. منظر سلطانه نگاهی به وسایل همه انداخت از ملوک پرسید. پس نوره گودادت نرفته باشه. ملوک حالی که دگمه و غزنها را از لباس منظر سلطنه باز می کرد. گفت نه خانم جا خان تو سهن. برای هر دو از خاطر جمع خانج و خنده را رها ها کرد. منظر سلطنه فقط از روی عادت گفت هر, هر بود ملوک بیشتر خندید و زهر سلطان لبش را گزید. منظر سلطنه آستین لباسی را که منبر دوله به مناسبت سیاه برداران برایش فرستاده بود تا بعد همام سال میرزا محسن خان بپوشد میان دو انگشت مالید. پیراهن از ابریشم خالص بود به رنگ سرمهی با خالهای ریز سفید و آبی که به لطافت برگ گل بر پوست می نشست. لباس شال تریاکی رنگ را که او به شمس سلطنه برای پایان عذاب و این هممام داده بود، بر بساط دخترش ندید، ولی قبل از اینکه بتوان از ملوک بازخواست کند، ملوک گفت، خان کچه پیرن خان ملیه و بخشش گذاشت، و به لخ کردن منظر سلطنه ادامه داد، منزا سلطنه گفت، ازاد همون بسیار خوب، ولی پیرن سرخابی پس و پیشواز بعد سیاه، ولی خرق تنگیش از این بود که شمسلطنه هدیه او را قابل ندانسته است. ملوک خندان گفت: توری نیست خان جان، خب مخواد عروس چه به سلامتی؟ و لباس‌های چرک منژو سلطانه را در بخشه پیچید و به دست زهرا سلطان داد. منژو سلطانه چشم قرهی به طرف ملوک باز گفت: شوش زهرا سلطان لباس ها را که هنوز حرارت و رطوبت بدن منژو سلطانه را در خود داشت، بغل زد و پرسید: با من که دیگه فرمایشی نداشته خان من برم قابلمه رو بزنم من گفت برو یه دو ساعت دیگه قابلمه ها رو با مش بیار زودتر نه در نهوچررم و دو ساعت دیگه چشم من از ملوک و زهر سلطان پرسید هندونه رو که آوردی. زهر سلطان گفت بله بله و تا شمعی در سقاخانه سر بازار جا روشن کندن ملوک گفت آار خم جان با پخشه آوردم انداختم تو خزینه که منزه ستنه حالا مثل انگشت ليش ارگن بود و چون مدستمی از بودا بر سکو نشسته بود خمره بدن از گلوگاه تا مج پا پیه و چرمی که پله پله بر هم خوابیده بود و ناف و فرج را می پوشاند قفسه سینه از شانه به شانه دو پستان عظیم چون دو مشک پردوغ، هر بازویی گلوله درشت و نه خمیر نان هر رانی لوله متکایی آکند از پنبه گره گره. ملو که کفشای چوبی را برای منزه سلطنه جوفت کرد و لنگ سفید راه راه را به دور بدنش پیچید و وقتی این خروار گوشت و پوست در پس پرده لنگ پنهان شد، دو قرچه کلفت بازو بیرون ماند و دو ستون قطور ساق که در انتهای هر یک دست و پای کوچک و بچگانه پیچ شده بود. تا خانم بر پا ایستد، ملوک به طرفتل این لباس از تنبر داشت و همراه او از رختکن خارج شد. از سر بینه راه به صحن حمام منتحی می شد و در دو باری که ساروجی دو طرف دالان آب روان بود. کناره دیواره ها خزه سبز و سیاه بسته بود، دورتر از جویها درون پارگین، آب ناپاک و آلودگی های دیگر می چرخید و پایین می رفت. من از سلطنه از دالان گذشت و وارد صحن حمام شد. زنی از حوز چهارگوش آب گرم میانه حمام به نشانه ادب یک تاس آب بر شانش ریخت و صدای سلام و تعارف از چهار گوش برغاست. در صحن پانزده تا نفری از زن و کودک و دلاک در مراحل مختلف شستشو بودند. بعضی سر فرزند را چنگ می زدند و بعضی در حال سابیدن پشت زن همسایه بودند. بعضی کیسه می کشیدند و بعضی لیف می زدند. بعضی به خیس خوردن نشسته بودند و بعضی به آب کشیدن ایستاده بودند. بعضی به خزینه می رفتند و بعضی به سر بینه باز می گشتند. بچه های شسته و نیم شسته و ناشسته به چهار گوش دوان بودند و صدای مادرها به دنبالشان. اینگر این حوزون حوز نکن سرد و گرد میشی مرگ مفاجا میکن یا یا دقیقه به تمک تا سنگ پاد کنم دسام تو آب پیر شده هنوز هیش کار خودم رو نکردم بوگ زرنیخ و هناب و صابون و سرشور در هوا بلند بود و هم همه صدای پیچیده در رطوبت تا سقف مدور حمام میرفت و در کاسه گمبدش میپیچید زینت خانم خانم خانم رغی باجی باجی باجی نور از سوراخ سقف چون قیفی وارونه بر صحن افتاده بود و بخاری که در فضا معلق بود رخوت و سستی خواب به همراه داشت زنان جوان با پستانهای برجسته و سرینهای برآمده و رانهای سفت از این زاویه به آن زاویه به قدمهای استوار میرفتند سینه را جلو میدادند و سر را بالا گرفتند، آنها که چند شکم ضاییده بودند شکم شل و پستان آویزان را به هنگام راه رفتن در پشت فرزند یا پس دستهای چلیپا شده پنهان میکردند و قوزیده گام برمیداشتند چند نفری بر دست و گردن زیب و زینت طلا ویخته بودند تا هم به همگنان نمایش دهند و هم عیار آن را محک بزنند شمسلطنه ورسینه کنگرهدارش نشسته بود و بدن را به دست ورزیده دخترآقای دلاک سپرده بود که کیسه را چون رنده نجاران بر بدنش بالا و پایی می برد و فتیله های را با حرکت سریع مچ بر زمین می ریخت پوست شمسلطنه که تازه از زیر جدار نوره بیمو و حساس بیرون آمده بود از تماس با کیسه موی زبر سرخ و برافروخته بود از دو نقطه روی کشاله هایش که پوست رفتگی داشت قطرات کمرنگ خون بیرون زده بود با این حال چه لذتی داشت این مشتمال دختر آقا شوخی را که از پشت شمسلطن ورچیده بود با کیسه جلو بردو و گفت بی ماشالله چه خوب خیس خوردی چونم برات بگی باسه همین بود که عجیب می‌خواست بهتره اون خود زن ناظر محمد مزدا بود خیلی هم با من توفیر داشت به حالای من نگاه نکن اون وقتا من با بخ... سر تو خمکن پس گردن تا به مالم خانومم باشی. وقت به ننم میگف این بشه سیغه آقا من باشم زن نوکر و صد سال سیاه. خالمم اصلش نمیخواست من خانوم باشم. خودش اول منو نشون نشونه محمد میرزا داد. به هوای خلعت قایمش کرد پشت در من از دای در نشون داد. اما بعدش که محمد میرزا سیتو منو داد داد ننم خاله پاشو پس کشید. یه هوا بشن پنلوتو بکشم آه همچی. جونم برات بگه اون وقت اون ازرای سقسیام باش دست به یکی کرد. سقش از روشم سیاتر بود توم بتون. جادو جنبلم بلد بود. با آصیف جنگیر نیست گابندی داشت. حالا من که هیچی زن عقدی محمد نرزا روسیا رو کرد. چه زنی چه زنی. یه پاشو زیرت آب بریزم آماشاله. جونم برات بگه مثل یه تیکه ماه پدر در پدر شازده خانوم از سرچشمه تا بحارسنو فقط جهازشو میبردن. بردن همون شب عروسی دو تا کنیز و دو تا قلوم همراش کرده بودن که زربفت و ترمتنشون بود صد تا قلوم منورد میردار و می و آزاد میکن حالا این ور آی قربون خانومم برم جونم برات بگه اون وقت اون عذرای سخصی ها یه همچه خانومی بخت کرد. معلوم نشد چی به خوردش داد که همین محمد میرزا پاشو گذاشت تو اجدی گفت نمیخوامش که نمیخوامش. خانوم همون شد. یه پر از اون سفیدا بده بمالم تو گودی کمرت آی یه دست در مکنی. برات بگه عذرا ها خودش عاشق محمد میرزا بود خاد تو سر. شکوفه کنیزه خانم میگفت واسه محمد میذا آفتابه ببره واسه که از شیشه مبالی نگاه کنه پدر سگه محمد من خوش خشکلم بود اخه دو تا چش داشت مثل دو تا پیاله که توش خون باشه. آب ببین ماشالله هزار م ما شدره چه چرکی ازت میاد چش شب عروسی تو خودم بگیرم میشالله سلام عصر شد خانم کوچیک کهدم دستو و بوسیددم پاات بوسم دختر نگاه کن شد ماه شب چهارم بلور بارفت. خدا حفظش کنه برم ملوف سینی منزاء و را نزدیک سینی شمسلطنه بر زمین گذاشت و خود شروع به آب بستن حنا در کاسه کرد منزاءو سلطنه شم قدم آخر را با تلق تلق کفش های چوبی و لنگرهای سنگین بدن طی کرد و مثل گونی آرد روی سینی پهن شد دختر آقا که کیسه کشی شمسلطنه را تمام کرده بود آب را در لگن منظر سلطنه سرد و گرم کرد و با دولچه بر سر و دوششتی خاخیش بذار خوب خیس بخوری خانم تا رنگ و هنات حاضر و واجبی تو بگیشم چرکی کی ازت بیارم یکی انقد و یک انگشتش را نشان داد. دختر آقا زلف جوگندمیش را یک لاغ دروشت بافته بود و پشت سر انداخته بود و لنگ مردانهای به کمر داشت پستانهای چروکی چون چندو کیسه خالی و دنده های بود. بود تمام قدرت و قوت تن و بدن لاغرش در دست و بازو که چون سیم به هم پیچیده محکم بود خلاصه میشد. چشم چشمهای آبگز شدهش را از سر حسرت به شکم برجسته و پوست شکفته ملوک که از تمام خلل و فرجش تراوت جوانی بیرون میزد. دوخت و گفت تو خوب آبی رفته زیر پوست داغرش مال در دل اضافه کرد منو کشتی این دوخت منظر سلطنه گفت دختر آقا امروز این ملوکم هم یک کیسه جانانه بکش داریم این هفته عروسش میکنیم. دختر آقا گفت آی به چشم کچکه دستتو دست تو بوسیدم همینه که خوشخوشان نشه. و چشم پوست زیتونی رنگ ملوک دوخت که در کنار سفیدی دنبگون منظر سلطنه چون گندم برشته بود. و اضافه کرد سفید سفیدش صد تما سرخ و سفید دویست من حالا که رسید به سبزه ششصد و شست و شش ما این عروسی شیرین میشه و نگاهی توعم با تبانی به ملوک کرد ملوک همچنان با یک دست آب را قطر قطره بر گرد سبز رنگ حنا در کاسه میریخت و با دست دیگر آب و گرد را مخلوط میکرد تا خمیری شل از آن بسازد از حرف منزع و سلطنه یعنی سر دندان سفید کرد از گفته دختر آقا قشقش شخنده را سردا. من از دو سلطنه رو به دختر آقا گفت میشه میشه و رو به ملوک اضافه کرد هر, هر زغنه بیا هنای من ببند برای این رو بیار. ملوک گفت هنا حاضره یه خود رنگ آسیش کنم تا سرت سرخ نشه جان. الان حاضر میشه برات میبندم چشم. شم سلطنه داشت بر پیشانی و گونه ها و روی بینی و چانش سفید آب میمالید. و ذرات ستیداب بر پستان درشت و شکم گردش میریخت سر را عقب گرفته بود و موهای خیسش بر پشت ریخته بود رانها را به هم چسپانده بود و مچهای پا را بر هم سوار کرده بود سرخی پوستش به نوزادان میمانست و چشم بخار آب دوخته بود که از ذرات نور رو به سخف گنبدی بالا میرفت تن شمسلطنه هم, هم البته جوان بود اما حسرت بر نمیانگیخت. به گل کمبرگی شبیه بود که به اولین نسیم شو گفته باشد و به اولین باد بریزد دختر آقا میدید که خونی که زیر پوست ملوک جاری است از جنم دیگری است از نوک پستانهای ملوک که چون دانی سنجد بر وسط گردی پستان نشسته بود نور زندگی ساطع بود ای جوان یادت بخیر دختر آقا آب بر سر و کول منظر و سطنه میریخت و حرف میزد، هزار مرد به شور که از سیا در اومده، آخرت باشه، ایشالله. فقط به عروسی و خوشی به همون بیای ایشالله، جانم براد بگه صدای لغزیدن و زمین خوردن کودکی در کنار حوز آب گرم برخواست و بلافاصله فاصله آبای گریش و فریاد نفرین تو با دلداری های مادرش زنی تنبان پسر چهار پنج سالش را پایین کشید که کامل کیسهش بکشد و زن دیگری به اعتراض گفت یه بارکی باباشو میخواستی با خودت بیادی اینجا پر دختر نابالغه مادر پسر گفت بکرو زن که فلان ندیده اینقدر شوهرت سر وقتت نیمده قد اندازه دست در رفته. یه نخشون بول به چش دستخر میاد ایفا خاک به سرم میشنوین این ای زنی که پاشنه تریکیده چه تنه میزنه چه گوه میخوره دختر آقا با صدای بلند گفت آهای آه هوای دهنتون داشته داشته باشینا خانمای محترم امروز اینجان اگه غرغ نکردن که نباز حرف مفت بشنوان زنستا رو صدا میزن زنستا زنستاهو همه میدانستند که گلین خانم از تختی که بران جلوس کرده است پایین نمی آید اما این اختار کافی بود که زنها ساکت شوند و از هم فاصله بگیرند کسی دم پای چوبیش را محکم بر زمین کوبید و گفت نگاه کن یه دونه پاشنگاز کشتم قدی از گیو نگاه کن دختر آقا به من از سلطنه گفت والله بعد از اینم قروغ کن پیش پای شما دوتا هوو به جون هم افتادن هم دیگر رو تیکه و پاره کردن شش روز بد نبین خونین و مالین. منازا سلطنه جوابی نداد سلطنه قبل از اینکه رخوت زمینگیرش کند از جا برخاست و به دخترآقا گفت من رابنداز برم برام وگرنه خواوم میبرهم منظو سلطنه که عرق صورتش را پوشانده بود و موهایش زیر خمیر رنگ و خنا پنهان بود و پیشانیش از خطوط نارنج و سیاه شیار شیار بود پرسید نمیمونی سر بینه یه لغمه ما بخوری زر و سلطان کوفته برنج و ترش بر با عرق بیدمشک دخترآقا گفت آخ که دل من واسه لیته لک زده اما خانم یه پر دهنم میذارم سردیم میکنه منظر ترده گفت حالا امروز بخور پرشبندشم از کوکوی سبزی پرزوشک و گردو درست میشه گرمی زیاده حلوا و خرمای سال آقام هست و رو به شمسلتن اضافه کرد. دیگه تا یه ساعت دیگه خب ها میرسه شمسلتن گفت نه هندونه میخورم بسه به یک آچ برداشت من از سلطنه گفت ملک به دختر آقا هندونه بده. دختر آقا بخورد مال فرازاد دیگه گیرد نمیاد. دختر آقا هندوانه رو گرفت و دستو بوسیدم پاتو بوستم خجالتم هم میدی بالا و شروع به گاز زدن کرد. وقتی پوست های هندوانه همه باز در سینی جمع شد شمسلطنه هم به طرف پله های خزینه راه افتاد. در همان وقت صدای فریادی از خزینه برخواست و زنی با جیغ و داد گفت خیر سرتون به قبر پدرتون جلوی این بچهای شیبتی به کندشتون رو بگیرید زینت که دیگر از جانب خزینه به سراغ دختر آقا آمد و پرسید کلچ کجاست دختر آقا ندیدی دختر آقا پرسید باز چه خبری تو خزینه مشتری چرا حوار میکشه؟ زینت گفت آخه رو آب خزینه گلاب برود دختر آقا حرفو کرد گفت خیلی خوب بی صدا آخه مشتریش از سنگ پاش داره به آب میره چنگش زد دختر گفت: بودو کشتو او کج توش آنیشین پیش زن ده به جنگات خانم بره تو خزینه."